دلنهادن مانویه مولوی برنامه هفته هم. عرب بر التماس خیش و سوگند خوردن که در این تسلیم مرا هیلتی و امتحانی نیست مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف حکم داری تیغ برکش از غلاف هرچه گویی من تو را فرمان برم در بد و نیک آن ننگرم در وجود تو شوم من منعدم چون محبم حب یعما و یسم گفت زن آهنگ برم میکنی یا بهیلت کشف سرم میکنی، گفت والله عالم سر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی، دوسگ از قالب که دادش وانمود هرچه در الواح و در ارواح بود، تا ابد هرچه بود او پیش پیش درس کرد از علم الاسما خیش، تا ملک بی خود شد از تدریس او قدس دیگر یافت از تقدیس او آن گشادیشان کز آدم رو نمود در گشاد آسمان هاشان نبود در فراخی عرصه آن پاک جان تنگ آمد عرصه هفت آسمان گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پست در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دان ای عزیز در دل مؤمن بگنجم ای عجب جویی در دران دلها طلب گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتا من رویتی یا متقی عرش با آن نور با پهنای خیش چون بدید آن را برفت از جای خیش، خود بزرگی عرش باشد، بس مدید، لیک صورت کیست، چون معنی رسید. هر ملک می گفت ما را پیش از این الفت می بود، بر روی زمین، تخم خدمت بر زمین می کاشتیم، زان تعلق ما عجب می داشتیم. که تعلق چیست با این خاکمان چون سرشت ما بود است از آسمان الف ما انوار با ظلمات چیست چون تواند نور با ظلمات زیست آدم آن الف از بوی تو بود زن که جسمت را زمین بود تارو جسم خاکت را از اینجا بافتند نور پاکت را در این جا یافتند اینکه جان ما زروحت یافته است پیش پیش از خاک آن میتافته است در زمین بودیم و غافل از زمین غافل از گنجی که در وی بود دفین چون سفر فرمود ما را ز آن مقام تلخ شد ما را از آن تحویل کام تا که حجتها همه گفته ما که بجای ما که آید ای خدا نور این تسبیح و این تحلیل را میفروشی بهر بحر قال و قیل را حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگوید از طریق ان به هرچه آید بر زبان تان به همچو تفلان یگانه با پدر زان که این دمها چگر نالایق است رحمت من بر غضب هم سابق است از پی اظهار این سبق ای ملک در تو بن هم دائی اشکال و شک تا بگویی و نگیرم بر تو من منکر حلمم نیارد دم زدن صد پدر صد مادر اندر حلم ما هر نفس زاید در در فنا حلم ایشان کف بهر حلم ماست کف رود آید ولی دریا بجاست خود چه گویم پیش آن در این صدف نیست الا کف کف کف کف حق آن کف حق آن دریای صاف که امتحان نیست این گفت و نلاف از سر مهر و صفا است و خوزو. حق آن کس که بدو دارم رجو گر به پیشت امتحان است این حوص. امتحان را امتحان کن یک نفس سر مپوشن تا پدید سرم امر کن تو هرچه وی قادرم، دل مپوشان تا پدید آید دلم، تا قبول آرم، هرانچه قابلم، چون کنم در دست من چه چاره است، در نگر تا جان من چه کاره است. این کردن زن طریق طلب روزی کت خدای خود را و قبول کردن او. گفت زن یک آفتاب تافت است. عالم زور روشنایی یافت است. نایب رحمان خلیفه کردگار. شهر بغداد است از وی چون بهار. گرب پیوندی شاه شهر شوی سوی هر ادبار تا که می روی. هم نشینی مقبلان چون کیمیاست چون نظرشان کیمیای خود کجاست چشم احمد بر ابو بکر زده او ز یک تصدیق صدیق آمده گفت من شهر را پذیرا چون شوم بی بهانه سوی او من چون روم نسبت باید مرا یا حیلته هیچ پیشه راست شد بی آلته آن مجنون که بشنید از یکی که مرض آمد بلیلی اندکی گفت آوه بی بهانه چون روم ور بمانم از ایادت چون شوم لیتنی کنتو تبیبا حاضقا کنتو امشی نحو لیلا سابقا قل تعالو گفت حق ما را بدان تا بود شرم اشکن ما را نشان شب پران را گر نظر والت بوده روزشان جولان و خوشحالت بوده گفت چون شاه کرم میدان رود؟ عین هر بی آلتی آلت شود. زن که آلت دبی است و هستی است. کار در بی آلتی و پستی است. گفت که بی آلتی سودا کنم، تا نه من بی آلتی پیدا کنم. پس گواهی بایدم بر مفلسی، تاشه هم رحمه کند یا مونسی. تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ، وانما تا رحم آرد شاه شنگ. کین گواهی که ز گفت و رنگ بود، نزد آن قازل قزاد آن جرح شد. صدق می گواه حال او، تا تابت نور او، قال او. هدیه بردن عرب، سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد به امیرالمؤمنین بر برپنداشت آن که آنجا هم قهط آب است. گفت زن ست قان بود کز بود خیش پاک برخیزی تو از مجهود خیش آب باران است ما را در سبو ملکت و سرمایه و اسباب تو این سبوی آب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو گو که ما را غیر این اسباب نیست در مفازه هیچ به آب نیست گر خزینش پر متاع فاخر است این چونین آبش نباشد نادر است چیستان کوزه تن محصور ما اندر او آب حواس شور ما ای خداوند این خوم کوزه مرا در پذیر از فضل الله هشترا کوزه با پنج لوله پنج حس پاک دارین آب را از هر نجس تا شود زین کوزه منفز سوی بر تا بگیرد کوزه من خوی بر تا هدیه پیش سلطانش بری پاک بیند باشدش شه مشتری بی نهایت گرددابش بعد از آن پر شود از کوزه من صد جهان لوله ها بربند و پردارش زخم گفت غز و ان هوا ابصارکم ریش او پرباد کین هدیه است لایق چون او شهی این است راست زن نمی دانست برگذر هست جاری دجله همچون شکر در میان شهر چون دریا روان پرز کشتی ها و شست ماهیان رو بر سلطان و کاروبار بین حس تجری تحت هل انهار بین این چونین حس ها و ادراکات ما قطره باشد در آن نهر صفا در نمه دختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن وی از اقایت اعتقاد عرب مرد گفت آری سبو را سر ببند این که این هدیه است ما را در نمد در دوز تو این کوزه را. تا گشاید شه به هدیه روزه را. کنچنین اندر همه آفاق نیست. جزرهیق و مایه ازواق نیست. زان که ایشان زابهای تلخشور دایما پر علتند و نیمکور. مرغ کاب شور باشد مسکنش، او چه داند جای آب روشنش؟ ای که اندر چشمه شور است جاد، تو چه دانی شد جیهون و فرات؟ ای تو نارسته از این فانی ربات تو چه دانی محو سکر و انبسات ور بدانی نقلت از اب و جد است پیش تو این نامها چون ابجد است ابجد و حواس چه فاش است و پدید بر همه تفلان و معنی بس بعید پس سبو برداشت آن مرد عرب در سفر شد میکشیدش روز و شب بر سبو لرزان بود از آفات در هم کشیدش از بیابان تا بشر زن مسلا باز کرده از نیاز رب سلم ورد کرده در نماز که نگه دار آب ما را از خسان یا ربان گوهر بدان دریا رسان گرچه شویم آگه است و پرفن است لیک گوهر را هزاران دشمن است خود چه باشد گوهر آب کوسر است قطره زین است کسل گوهر است از دعاهای زن و زاری او وزغم مرد و گرانباری او سالم از دزدان و از آسیب سنگ برد تا دارالخلافه بیدرنگ دید درگاه پر از انعامها اهل حاجت گستریده دامها ها دم بدم هر سوی صاحب حاجت یافته زاندر عطاب و خلعت بحر گبر و مؤمن و زیبا و زشت همچو خورشید و متر نیچون بهشت دید قوم در نظر آراسته قوم دیگر منتظر برخواسته خواص آمه از سلیمان تا به مور زنده گشته چون جهان از نفخ سور اهل صورت در جواهر بافته اهل معنی بهر معنی یافته آنکه بی همت چی با همت شده و ان که با همت چه با نعمت شده در بیان آنکه چونان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم کرم کریم هم عاشق گدا است اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گدا است و صبر کریم نقصان او است. که ای طالب بیا جود محتاج گدایان چون گدا جود می جوید گدایان و زعاف همچو خوبان کاینه جویند صاف روی خوبان زاینه زیبا شود روی احسان از گدا پیدا شود پس از این فرمود حق در وزه بانگ کم زن ای محمد برگدا چون گدا آینه جود است هان دم بود بر روی آینه زیان آن یکی جودش گدا آرد پدید واندگر بخشد گدایان را مزید پس گدایا نایت جود حقند، وان که با حقند جود مطلقاند. وان که جز این دوست او خود مرده است، او بر این در نیست، نقش پرده است. فرق میان آنکه درویش است به خدا و تشنه خدا و میان آنکه درویش است از خدا و تشنه غیر است درویش است او نه نا اهل نقش سگ را تو میانداز استخان فقر لقمه دارد و نه فقر حق پیش نقش مرده کم نی تبق ماهی خاکی بود درویش نان شکل ماهی لیک از دریا رمان مرغ خانه است او نسی مرغ هوا لوت نوشد او ننوشد از خدا عاشق حق است او بحر نوال نیست جانش عاشق حسن و جمال گرت وهم می کند او عشق ذات ذات نبود وحم اسما و صفات وحم مخلوق است و مولود آمد است حق نزایید است او لمیولد است عاشق تصویر و وحم خیشتن کی بود از آشقان ظلمنن؟ عاشق آن وهم اگر صادق بود، آن مجاز او حقیقت کش شود. شرح میخواهد بیان این سخن. لیک می ترسم ز افهام کهن. فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد، در آرد در فکر بر سماع راست هر کس چیر نیست لقمه هر مرغک انجیر نیست خاسم مرغ مرده پوسیده پرخیال عمی بیدیده نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاک، نقش اگر غمگین نگاری بر ورق او ندارد از غم و شادی سبق. صورتش غمگین و او فارغ ازان، صورتش خندان و او زان بینشان، بین غم و شادی که اندر دل خفیست، پیش آن شادی و غم جز نقش نیست. صورت غمگین نقش از بحر ماست، تا که ما را یاد آید راه راست. صورت خندان نقش از بحر توست، تا از آن صورت شود معنی درست. نقش های کندرین حمام هاست از بیرون جامکن چون جامه هاست تا برونی جامه ها بینی و بس جامه بیرون کن درا ای هم نفس زن که با جامه در اون سو راه نیست تنز جان جامع زتن آگاه نیست پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بحر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه او را آن عرابی از بیابان بعید مردر دارالخلافت چون رسید پس نقیبان پیش او باز آمدند بس گلاب لطف بر جیبش زدند حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سوال پس بدو گفتند، یا وجه العرب از کجایی، چونی از راه و تعب. گفت، وجهم گر مرا وجه دهید، بی وجوهم گر پس پشتم نهید. ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز ذر جعفری، ای که یک دیدارتان دیدارها ای نصار دینتان دینارها ای همه ینظر به نور الله شده از بر حق بهر بخشش آمده تا زنی کیمیاهای نظر بر سر مسحای اشخاص بشر من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم، بوی لطف او بیابان ها گرفت، ذرههای ریگ هم جان ها گرفت، تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم، بحر نان شخص سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوارا بدید. بهر فرجه شد یکی تا گلستان. فرجه او شد جمال باغبان. همچو عرابی که آب از چه کشید. آب حیوان از رخ یوسف چشید. رفت موسا کاتشارت او به او بدست. آتشی دید و که از آتش برست جست عیسی تا رهد از دشمنان بردشان جستن به چارم آسمان دام آدم خوشه گندم شده تا وجودش خوشه مردم شده باز آید سوی دام از بحر خر سائد شه یابد و اقبال و فر طفل شد مکتب پی کسب هنر بر امید مرغ با لطف پدر پس ز مکتب آن یکی صدری شده ماه گانه داده و بدری شده آمده عباس هر از بحر کین بحر قم احمد و استیز دین گشت دین را تا قیامت پشترو در خلافت او و فرزندان او من بر این در طالب چیز آمدم صدر گشتم چون به دهلیز آمدم آب آوردم به تحفه بهر نان بوی نانم برد تا صدر جنان نان برون ران دادمی را از بهشت نان مرا اندر بهشت در سرشت رستم از آب و زنان همچون ملک بیغرز گردم برین در چون فلک بیغرز نبود بگردش در جهان غیر جسم و غیر جان آشقان برنامه های معنوی مولوی را می‌نواختاش و شه باز ایراد تهیه و اجرا کردند.